بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فقال حمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه فجعل كل من مر به يلعنه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم ثم قال للذي شكى كفيت أو نحوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وآله والصحبه يجمعين أما بعد نبدو سبومين حديث حديثة بجحيفة رضي الله عنه كم يقول يات رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره مثل حديث قبلي فاردي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى يات ميكون أزهم صيأش فقال احمل متاعك فضاحه على الطريق فمن مر به يلعنه ون منزلة از خونه بیرون بریستی تو کوچه تا هر کسی که از کنار اون وسایل رد میشه رو لعنت بکنه یک راهیه برای زجر اون کسی که در حق همسایه‌اش ظلم میکنه و بهش آزار و اذیت میرسونه فجعل کل من مر به یلعنو هر کسی که رد میشد او را لعنت بکنه اون همسایه فجا ال نبی صلی الله و فقال ما من الناس یعنی اومد والا با این اعرابش که گفت اون چیزی که از مردم دیده بعد رسول الله صلی الله علیه و فقال ان لعنه الله فوق لعنتهم لعنه الله از لعنت اونهاس بر اون شخص و همچنین اعراب گذاری شده طبق نسخه کن پیش من هست النبي صلی الله علیه, علیه و صحابיו من رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال اني رسول بهش فرمود ما من الناس شيء چی چیزی دیدی از مردم مردم چی بعد بهش اِنَّ لَعْنَتَ آلَنَنِ مِگه که مردم لعنت کردن رسول الله سرسان در جواب او میگه ان لعنت الله فوق لعنتم لعنت الله بالاتر و بیشتر از لعنت مردم بر او یا بگیم که سنگینی لعنت الهی سختره بر اون شخص تا مجرد اون لعنت اون افرادی که بهش لعنت فرستاده خلال هرچند که اینجا خب لعنت یک سیغی دعایی هست که به معنای خاستن از الله بر محرومیت اون شخص از رحمت الهی اصل لعنت ترد اصل لعنت ترد شدن ابلیس ملعون شد یعنی متروت شد یعنی رانده شد رانده شدن شخص از جایگاه رحمت و لطف گفته میشه لعن خب مردم دعا میکردن که الله لعنتش بکنه یعنی الله را از رحمت خودش محروم بسازه اما امام اگه معنا اون چیزی که عرب استلاح داره لعنت الله و خشم الله بر این شخص بیشتر تا اون خشم مردم بر این شخص با اون دعا و نفرین شد ثم قال الذي شک کفیته و نحو کفایت شدی یعنی دعای مردم در حق تو پذیرفته شد و اون شخص چنانچه در حدیث قبلی داشتیم دست از اون آزار اذیت کشید و اومد اصخاهی کرد همین حدیث را ما در شعب ایمان ما به حقی داریم حدث شمارية 8924 از حدث ابو جحيفه رضي الله عنه بلوزه ديگر چنين امده كه اون شخصي كه لعنات شده بود نزر رسول الله صلى الله عليه وسلم وچنين ميقيت فقال يا رسول الله ما لقيت من الناس اون چيزي که از مردم دیدم اون چنين مرون نفرين و لعنات کردن قال صلى الله عليه وسلم وما لقيت منهم چي چيزي ازشون دید يعني چكواه کردن قال يا لعنونن انها مره لعنا قال فقط لعناك الله قبل الناس قبل ذي مردم تورا لعنت بکنه الله تورا لعنت کرده حدیث رو وقتی کنار هم دیگه بزاریم معنای حدیث باظهرتر و روشنتر میشه مثلا ما در این لفظی که من بخاری روایت میکنه اینجا داریم ان لعنه الله فوق هم لعنت الله بعتر و بالاتر از لعنت آنهاست بلی خب اینجا معناش واضح‌تره این که لعنت الله بر تو قبل از لعنت مردم بوده منظور از بالاتر منظور پیشتره یعنی پیش از اینکه مردم در لعنت بگه الله در لعنت کرده فقط لعنك الله قبل الناس قبل از اینکه مردم در لعنت بکنه بون و ازر ازیت الله تو را لعنت کرده و ملعون بودین از الله که مردم تو را لعنت کرده و این از فواید کنار هم دیگر گذاشتن حادثه رسول الله صلی الله علیه و سلام. acha kadar baz az nusakh مثلا اینجا نسخه ادم مفرد ما بخاری که اینجا ما داریم با تحقیق حسین نواباش اشراکات شیخ الغنی رحم الله خب اینجا بو این لفظ من فجائل و سلام قال ما لقیت من الناس الرسول صلی چه چیزی از مردم دیدی هر چه‌کیه این یک قسمت از حدیث اینجا اومده رسول الله صلی الله علیه و سلام می فرمایند ما لقیت منهم من الناس من هم لقیت اول خودش میاد میگه ما لقیتو من الناس بعد میگه ما لقیته چی چیز از مردم دیدی؟ چینی چیزی از مردم دیدم دی؟ میگه خب چی دیدی؟ بعد میاد میگه برا لعنت کرده خب حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله باب من اذى جاره حتى يخرج حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا أرطاط بن المنذر قال سمعت يعني أبا عامر الحمصية قال كان ثوبان رضي الله تعالى عنه يقول ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام؟ فيهلك احدهما فمات وهما على ذلك من المسارمه إلا هلك جميعا وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على ان يخرج من منزله الا هلك 60 باب ازباب صحيح هذا مفرد امام البخاري رحمه الله ياد باب من اذى جاره حتى يخرج كسي که اشره ازا رذيت بده تا اینکه همسایه بلند بش از اون خونش از اون مکان مغازه باشه منزل باشه با آزار اذیت ما سبب بشیم که اون همسایه بلند بشه از سر جاش حکمش عقوبتش 94 امین حدیث حدیث ابو معمره همسی رحمه الله کمیات ثوبان رضی الله عنه کمیات این حدیث حکم مرفوع رو داره چون از قبیل اجتهاد نیست که بگیم اجتهادی باشه و به همین معنا ما احادیث دیگر مرفوع داریم که صریح است قول رسول الله صلی الله و سلم. و این حدیث حکم مرفوع رو داره. يعني حكم حديث رو داره این قول سبحان رضی الله عنه ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام دو تا شخص ایستن فردی سن, سن هم دیگر قهر کنند روی گردان بشن سه روز فیه لکه احدهما یکی از اونها هلاك بشه بمیره فمات وهما على ذلك والا بمیرن و دو نفر هم قهر بودن من المصار ما از قهر و از اون روی و از اون کینه و کدورتی که بوده از دنیا برن یعنی بر اون کینه و کدورت از دنیا برن الا هلكا جميعا مگر اینکه هر دو جهنمی بشن هلاک حلاق بشن هلاکت آنها بر آنها واجب بگرده و مستحق عقوبت اللهی و اونم آتش جهنم بشن سخت یاسونه سخت به خاطر نشکستن غرور کبر صرف و جلو ورده انجلوه رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر کینه و کذرت و خصومت دنیاوی انسان از برادر ایمانیش چون بحث ایمان اینجا روی گردان بشه به خاطر ناسزایی که گفته به خاطر حرف ناشایسته که از شنیده به خاطر سر ارث و میراثی که بوده سر زمینی که بوده هرچی از هست دنیاست و دنیا ملعونه انسان مستحق لعن میشه به خاطر دنیای ملعون به خاطر دنیای ملعون که ناز الله ارزش نداره خودت رو مستحق لعن میکنه. مستحق حلاکت میکنیم که جهنمی بشیم عرضشو رو داره؟ آدم سرای جاویدان را اونجا در جهنم سپری بکنه خاطر یک دنیایی که فانی هست که ما میدونیم کل من علیها فان و یبقا وجه رب کرد ما هم میدونیم همه میدونیم کل من علیها فان همه نابود میشن کلی این دنیا نابود میشه چرا انسان دعواش با برادر ایمانیش یا برادر تنیش بر سر مال دنیا باشه اون مالی که بال پشم نزد الله ارزش نداره خب این گفتم عقوبت سختیه این یک خوشداره یک گوشزده برای تمامی ماها برای اینکه مراقب اعمال خودمون باشیم خیلی چیزها هست شاید ما ناچیزش بشماریم کوچیکش بشماریم ولی نزد الله خیلی بزرگه چرا نزد الله بزرگه چرا نزد الله بزرگه الان این قضیه چرا اینقدر این, این جرم شنیع شده سخت شده چون ارزش به اون اللهی که در قلب برادریت نگذاشتی اون برادر ایمانیته دوشنبه و پنجشنبه رسول الله صلی الله علیه و اعمال بالا میره اما اعمال شخص پذیرفته نمیشه به خاطر چی؟ به خاطر قهرش، خاطر روگردانیش، به خاطر اینکه تو حاضر نشی غرورتو خرد بکنی به خاطر ایمان اون شخص، به خاطر ایمان که شرع از تو میخواد تنازل بدی، کوتاه بیایی، تواضع بخرجه اینجا هست که رسول الله صلی الله علیه و من تواضع علی الله رفعه. این تواضع منزلی که زن اشتباه نکرده یک از زنان بهشت این زنی که رسول الله صلی الله علیه و وصفش میکنه تو هر زالمه زن مظلوم زن میاد دست دست شوهرش میذاره میگه شوهر اشتباه از من بود تقصیر از من بود مرا من ببخش شوهر مقصره ولی به خاطر اینکه شوهر نمیره سکته نکنه اون شوهر دیغمق نشه زن کوتاه میاد این زن به نظر شما نزد اون شوهر عزیز و محبوب نمیشه نور و چشم اون مرد نمیشه وقتی که میدونه که اشتباه از خودش بوده ولی اون زن تواضع به خرج بده من تواضع علی الله رفعا این زن رفعت پیدا میکنه ارزشش داره اون زن کوتاه بیاد به خاطر اینکه محبوب نزد شوهرش بشه بلی ارزشش داره قانون خانواده گرم شدن و محافظت بر اون خانواده و خوشی اون خانواده و که زن و بچه همه در سعادت و خوشی باشن از یک صلح کردن، از یک آشتی کردن، هزاران برابر براتره. یک آشتیه. ارزشش نداره که این صلح برقرار بشه و آشتیه برقرار بشه. یک کتا همدن. چی سختی مگه؟ نه. با یک کلمه. شوهرم من نمیخوام تا تو بخوابی. یک به زن داری یاد میده رسول الله صلی اللہ علیہ این سبب میشه این زن تو بهشتی بیشی. چرا؟ چون تو غرورت، کبرت که ابلیس با اون عمل ناشایست جهنمی شد تو اون گناه و اون جور مرتکب نشودی کبر و غرورتو خورد کردی و ما من جار یظلم جاره و یقهره حتا يحمله ذلك على ان يخرج من منزله إلا هلاك و ما من جار هیچ همسایه‌ای نیست حالا می گفتم چه مغازه تو منزل یظلم جار همسایه‌اشو اذیت بکنه و یقهره قهر غلبه است الله قهار غالب و ما مغفوریم مغلوبیم و همیشه در درس گفتم این خوصا در بصف الله جل چنهو که میاد العزيز و الله عزیزه یعنی الله قخاره به یک معنی میان تقریبا یک فروغ اندکی بینشون هست یعنی الله, الله غالبه هم اعتبار گفتیم مقدرات کونی چه شرعی حکمی از حکم الله بالتر نیست حکم شرعیش توحید عملی باز لحاظ قدری هم الله بگه کن فیکونه هیچ کسی نمیتونه مقدرات الهی را عوض بکنه اون چیزی که الله بخواد میشه الان شما این حدیث را از قول و گفتار رسول الله صلی علیه و سلم دارید عملنم الله برای اینکه ما یاد بگیریم درسها را در قرآن به ما داده نمونه مثال زده بهمون که ما قدر ارزش و خوبت ایمانی را بدونیم مثل قصه یوسف علیه السلام خواب می‌بینه یا ستاره و خورشیدو ماساژ نمی‌کنه بهش میره نزد پدرش پدرش تعبیر خواب را میدونه بهش میگه که اگر برادران بهت مک کردن بدون که این نزغات شیطونه این آویز گوشیشه پدرش نصیحتش میکنه برای اینکه معاذ باشه که شاید برادرانش مکر و نیرنگی بکنن بر علیه شیطان میاد بین اونها اختلاف میندازه و انداخت او رو در چاه انداختن باعث شد که به عنوان برده فروخته بشه بعد اجیر و اسیر میشه تو زندان انداخته میشه و کل این جریان شما دارید از ظلم های مختلفی که بر سر یوسف در میاد برسرش در میاد به خاطر اشتباه برادرانش ولی با این وجود وقتی که میان نزش، اول ده برادرش بنیامین رو میگیره میگه انی انا اخوک فلا تبتئس من برادره تن... برادره در مقابل اون عملی که برادران خودمون انجام داده خط تا ناراحت نکن به دل نگی بعد کلی جریان پیش میاد یعنی چه بهش میگن جرمی پس از جرم دیگر الا تو چاهش انداختن این همه دربدری و گرفتاری کشیده بعد بحث سرقت انجام میشه اونها با کمال گستاخی با وجودی که یوسف را از پدرش جدا کردن و این گفتم دربدری کشیده یوسف جلو روش صدا میگیرن وقتی که بحث دوزی شد اون جامع از وسائل بنیامین پیدا شد گفتن این یسرق فقط سرق اخو له من قبل اگر بنیامین دوزی کرده از خب برادرش یوسف هم دوز بوده خب دارن به کی میگن؟ به یوسف طرف مقابلش قابلش یوسفه یوسف کیه؟ همه کاره مثل کل پادشاهی و امپراتوری رو پادشاه مثل داده تحویل کی؟ تحویل یوسف میتونه اونا بکشه زندان بندازه اجیرشون بکنه اجیرشون بکنه و الی آخر در مقام قدرته خب این یکی از درس‌ها هست توی قصه ولی یوسف اصلاً بروش نمیاره اصلاً به دلم نمیگیره چون از قبل خودش به برادرش میگه به برادرش بنوایی میگه به دل نگیر شما جاهلان شما نادانان شیطان اومده خودش اقرار میکنه یوسف بعد از نزغه شیطانو بینی و بین اخواتی شیطان اومد نزغات و برد. اختلافات و بین ما الان با این حرفا یوسف چی میشه؟ من تواضع علی الله خو این رفعت سبب میشه که اون شخصی که پایینه چی میشه؟ اشتباه کرده سر به سرش بذاره. اون عزته؟ نمونشه. این نمونه این نمونه شه این حدیث را شما بیایید معکوسش بکنید رو حال یوسف و برادرانش. صلح آشتی چی چیکار کرد با یوسف؟ عزیزش کرد، محبوب دلهاش کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم از بس به یوسف ولا میاد حدیث میگه کریم ابنو کریم ابنو کریم ابنو خلیل الله کریمه از مکرمترین انسان ها میپرسند رسول هسته سال میشه میگه منظورتون یوسفه اینقدر جایگاه بالای یوسف بهش رسید با چی انسان میرسه؟ با ایمان با تقوا با کرم با اخلاق این ها. هست و اینها احادیث داره ما رو رهنمود میکنه به این جایگاه به این مقام که چطور ما بهش برسیم هم از عز... گفتار رسول الله داریم هم نیمونی عملیش در وحی الهی از قرآن پس انسان باید برحذر باشه که قهر گردانیش سبب نشه که مستحق لعن بشه و مستحق حلاق شدن و واجب شدن جهنم برش بله قال المؤلف رحمه الله باب جار اليهودي حدثنا ابو نوعیم قال حدثنا بشیر ابن سليمان عن مجاهد قال كنت عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وغلامه يصلخ شاتا فقال يا غلام إذا فرغت فبدأ بجارنا اليهودي فقال رجل من القوم اليهودي وأصلحك الله قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه شاس يكمن باب از صحيح هذا مفرد باب جار اليهودي باب همسایه یهودی یهودی هم بگردن گردن حق داره یهودی یهود و این همه ظلمشون یهودی که اومدن سنگ رو روی دیوار گرفته که بر سر هم بندازن و او را ترور کنن بکشن یهود بغضشون داریم فلا الله, الله لعنتشون کنه ملعون بلعنت لعنت الهی بلعنهم بل الله بما قالوا قالوا يد الله مغلوله غله ایدهم ولعنوا بما قالوا ملعون درسه بلکه بوئ وجود توصیه شدیم به یهود همسایه یهودی مجاهد میگه نز عبدالله منو عمرو من عاص بودم کنتو عند عبدالله من عمرو من عاص ردی الله عنهما و غلامه و شاطن غلامش منظور بردشه اصل بر اینه به معنی میاد میادگاهی ولی خب در مجتر احادیث حمله برده برد میشه چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمان لیس علی المسلمی فی فرسی و غلامه و غلامی در رواتی فی عبده ص یعنی شخص در مقابل بردگانش و اسبهایی که داره زکات نداره اسب زکات نداره و برده هم زکات نداره حالا بحث فقیش مفصله اینجا بحث فقهیش نیست فقط وجه شاهد کلمه غلامی که به معنای برده میاد یسلخوا شاتان داره سلخ میکنه یعنی پوست بزی را میکنه فقال یا غلام عبد الله بن عمرو ناس میگه به اون برده اذا فرقت فابد بجارنا يهودي پس گسفندر و زدی قسمت از گشتار میبری به پمسه یهودیمون فقال رجل من القوم یکی از ان قوم یهودی و اصلحة الله این دعای خیره نوکنین این ادب تو احادیث و خصوصا در گفتار صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم تابعین این ادب رو موید یاد بگیریم و الذین اتبعوهم به احسان این احسان به نیکی هست این در کار خیره راه خیره که باید ره ر باید اون ها رو بگیریم اصلاحک الله حسن فرزندت کار اشتباهی میکنه همیشه رو زبان خیر کن برخلاف مادرای امروز که غیر از نفرین و لعن و دعای بد به فرزندشون دعای دیگری نمیکنه. یعنی فقط بدی اون فرزند جلو به چشنشون میاد نمیدونن که شاید اون دعاشون استجابت بشه و بعد خودشون رو سرزنش کنن من مادری را میشناسم هر بار این رو نفرین میکرد، بچهش میوفتد یا سرش میشکست یا دستش یا پاش خودش هم میدونه که مقصر خودش هم بعد میشه از یک ماه پرسری بچهش میکرد ولی باید توبه نمیکرد به زبانش نمیگرفت خودش هم میدونستم خودش هم میدونست کین به خاطر دعای مادر خودشه خب چی میشه بر زبانت ای مادر ای خواهر بیاری بگی الله خوبت کنه چی میشه الله صلحت کنه خیرت الله به من بده خیرتو ببینم خدا نیست کنه کورت کنه کور بشی و یدعو الانسانو به شرقی دعا اهو بالخیر به جایی که دعای خیر بکنه دعای شرق میکنه خوبه؟ نه والله بده همیشه این دعای خیر را بر زبان خودمون خصوصا در مقابل خودمون از همدیگر یاد بگیریم همیشه زبان خیری نسبت به هم داشته باشیم هم به خودمون هم به والدینمون مثلا نز عربا من دیدم وقتی که میخوان دعا بکنم مثلا سن اسباب باب وقتی که میخوان خوصا یک کسی دوست خیلی عزیز پیشه میگه الله ایرحم والدیک الله پدر مادر اترا بیا مرزه. خب نه کنید یک دعاست منی که به پدر مادرم شخص داره ترحوم میفرسته چی میشه اون شخص پیشه من عزیز میشه برخلاف این که چی بخواد؟ از الفاظ نکوهش و نفرین و دشنام استفاده بکنه یا دعای بد استفاده بکنه اینها سبب محبت میشه حداقلش اسباب هدیه به برادرت حساب میشه وقتی که شخص به تو داره میگه الله یرحم والدیک که الله اصلح الله عیالک الله بچاتو خوب بکنه الله پدر مادرت رو به الله خویت رو خوب کنه صاحبش عزیز بشی این داره یک هدیه‌ای داره بهات میده و اونم که در حقت داره میکنه تا پس اینجا رفتاری شایسته رو ما میبینیم در مقابل اصلاح یک چیزی که فکر میکنه اشتباس عبدالله من عمرو نعاص صحابیه یک فرد یعنی معلوم نیست تابعی یا صحابیه انکار میکنه با دعای خیر با دعای خیر انکار میکنه الله امورت را اصلاح بکنه خوب کنه چرا به این یهودی گوش فرستادی میخوای بفرستی؟ قال اینی سمعتو در دل دلیلشو میگه عبدالله من عمرو نعاص شنیدم توسیه و سفارش میکنم به همسایی اینی سمعتن النبي سبسیم یوسیب الجار حتی خشینه تا جایی که ترسیدی او رو انه سیور رفو تا جایی که فکر کردیم گمان بردیم چنانچه در حدیث قبلی داشتیم اینجا تا جایی که ترسیدیم که همسایی از همسایه دیگر ارسن ببره بله بعد دیم. قال المهلف رحمه الله باب الكرم حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معاد العرب تسالوني قالوا نعم قال فخياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا 60 باب صحيح ادم مفرد باب الكرم این کرم چیه کرم گفتیم کرم ابراهیمی نه کرم خاتم طیب این کرم چیه عربا دعا میکنن کریمن ترکا کردها فرسا هم دعا میکنن که ما مهمون نوازیم کریم کل یدعی و سلام بلیلا لا تقر بذلا ولا بذل هم ادعا میکنن که عاشق لیلان ولی لیلان نه اینو میخواد نه اونو میخاد هیچکدوم نمیخاد به ادعا نیست به ادعا نیست عمل در عمل اون مهمانوازی و کرم در عمله اب هرره رضی الله عنه میگیاد رسول الله ص صل سوال شدن ای الناس اکرم از مردم کی کریم ترینه کریم ترین کیه قال اکرمهم عند الله اتقاهم کریم ترین کسی که متقیه است الله نزه الله و کریم شخصی که از الله میترسه اینو بدونید نزه الله اون صفات کرمی که سبب میشه انسان محبوب بشه کیه متقی این ان اکرمکم عند الله اتقاکم اینو بدونید فرقی بین عجمی و عربی نیست فرقی بین سیا و سفیدش نیست نه به نسبت به نه تیری و نجادت نه و ایل توارث محبوب ترین بندگان و خلق الله نزه الله کیان متقي ترين قالوا ليس أن هذا نسأله مقصود ما إين ان إين سؤاله ما نبوت جواب سؤال ما نبوت قال فأكرم الناس كريم ترين ما يوسف در الروايات إنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم در الروايات دجالين تقولوا ماذا يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله يكم نيازب التعديل دارين روايات ما توجب الروايات الصحيحة ترذ در صحيح بخاري أصل صحيح بخاري ك قالوا ليس عن هذا نسالك اسنا السنن يپرسيم قال فاکرم فا الناس فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله, الله چهار تا پیامبره اینجا سه تا اومده یوسف نبی الله فرزند نبی الله فرزند خلیل الله سه شد درسه با خودش یوسف سه تا شد در از چند تا چهار تا یوسف کریم فرزند یعقوب کریم دومی دو فرزند اسحاق کریم سومی فرزند ابراهیم کیه خلیل الله فی نبی, نبی الله ابن نبی الله ابن نبی الله ابن خلیل الله قالوا ليس عن هذا نسالوك من این نبود یعنی این جواب سوال ما نبود پاسخ ما نبود ما از این نپرسیدیم حالا یوسف فهمید چرا را کریمه چه رنج داد صدس وقتی که از کریم ترین سوال شدن گفت یوسف کریمی به چیه به اخلاقت به عفت به گذشته به احسان خوبیت بدی بهش کردن خوبی کرد کرم به اون بوزی نیست که سر میزنی و نه هم به شطورت و نه هم به گاوت که سر میزنی کرم به این نیست کرم به اخلاقه کرم به اون سخن نیکته تو آب و نمک بیار جلو مهمونت ولی زبانت شیرین باشه اون شوری شیرین میشه باور کن لذت اون سخن نیک لبخندی از دل که بر دل می نشینه ارزشش از هزاران اسب و شتری که بخوای سر بزنی ارزشش بالاتره انسان عزت نفس داره انسان عزت نفس داره آب شوری هم باشه ها شوری هم باشه ولی وقت بهت بگم بفرما حالا با اون مقاله عربا میگن انت جمال الناس تکسب رضاهم و اون الفاظی که مجامله و تعریف و تمجید درش از خوش آمدی چشمون دیدم و روشن کردی دل مون رو پوش کردی خب این سخن که از دل بیادم از دل میگی بر دل اون طرف مقابل نمینشینه ارواح و جنود و مجنده فیک نکن که بر سر زبون بیاری تو دل چیز دیگه باشه خدا کنه بر دیگه نیاد ای خدا کنه که شب نمونه تو دل چیزی که اثر زبونه بفرما اصلا اگر تو بری اصلا ما دیگه نمیتونیم بخوابیم مثلا خرار نداریم اگه بخوای بری دیگه اصلا ما سبحان الله روحه والله بتارس روحه ارواح و جنود و مجنده ما تالف من اتفق روح اینو از محالات بدون که تو در دلت یه چیز دیگه باشه زبان یه چیز دیگه بگه بعد اون طرف مقابل حسش نکنه یک جایی هست که گندش در میاد یک جایی هست خدا رسوات میکنه دروغ نگو مهمون عزیزه از دل بگو تا بر دلش بشینه ارواح و جنود و مجنده. این مجنده این کرمه قال فعن معادن العرب تسالونی و در روات تسالونی از اصالت و اصل و فصل عرب ها از من می کدوم یکی از این عرب ها با نصب تره احسن بیشتر بالاتره. قالو نعم از همی می یعنی بین این هم عرب که این میگه من و این من این در متح قوم خودش اون در متح قوم خودش هر کدوم شعری گفتن حق با کدوم یکی یعنی از بین این هم عرب قال فخیارو کم فی الجاهلیه خیارو کم فی الاسلام ایذا فقیو خیارو کم فی نکن ستا دست رتبه بهترین شما در جاهلیت خیاركم فی الاسلام در اسلام عمر ابن خطاب در نظر بگیرید کرم و اخلاق داشت شجاعت داشت قبل از اسلام اخلاق نیک داشت خیاركم فی الاسلام و اون اخلاق و خصال نیکش که قبلا در جاهلیت داشته الانم داشته باشه در اسلام با فقه در دین این بهترین مردم فقه در دین علم طب این اول شریفتری خیارو کن فالجاهلیه ولی که خیارو کن فالاسلام نباشه سالما وقتی که در اسلام خیار ما نشه فقه هم نباشه به دردش نسبش میخوره؟ سیدیش و آقایش به دردش میخوره؟ نه به دردش نمیخوره اگر خیار در جاهلیت نباشه ولی خیار در اسلام باشه و فقه باشه چی میشه قابل قیاس با اون شریف نسب عطا بنبی رباح عبد بود عبد از عبید ولی میدونین لقبش نزد صحابه و تابعین چیه؟ سلطان العلماء سلطان العلماء امراء وقتی که میومدن دست لسپاشون میلرزید سرشون خم میکردن در مجلس حطابین مروا با عزتی که داشت عالم بود شجاع بود اهل براع الظهر بود دیندار بود متقی بود ولی نسبش در جاهلیت چیه؟ عبد برده تحقیر می شود بلیکن فقه در دین کجاش رسون خیارو کن الاسلام مهم اینه که تو در اسلام چه ارزشی داری چقدر از اون اسلام در تو هست چقدر از اون اسلام تو بهش پایبندی المسلم و من سلم المسلمون من لسانه و يده چقدر مردم از زبان تو دست در امانن چقدر واقعا تو مسلمانی وزن تو به اسلامته وزن تو به اسلامته خياركم في الإسلام إذا فقه فقه فهم علم إنه هميشه در زهنتم باشا عطا بن أبي رباح برد بوت ودر جاهلية تحقين ميشود ولكن شو عزيز قلبها عزيز نز علمات توجهي كي قفت لقبش در كتب سيار بالسلطان العلماء عطا ابن أبي رباح در عز اصحاب که بودن اصحاب یه طرفی تابعین دیگه طرفی دیگر. این ستاره این چینین درخشش پیدا میکنه که لقبش میدن سلطان العلماء با وجود که این همه علماء در مکه بودن ولیکن اون ستاره درخشان مکه میشه عطاب نبرباه چین افتخار را بهش داد؟ نسبش، اصلش، فصلش، تیره و نجادش یا ایلو تبارش اسلام خیارو کن فالاسلام اذا فقهو اگر فقه باشه، ارزش انسان بفقه در دينه عرضش بفقه در دينه وإن فقه در دين حاصل نميشه با علم با فهم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله بله قال المؤلف رحمه الله باب الإحسان إلى البر والفاجر حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا سالم بن أبي حفظة عن منذر الثوري عن محمد بن علي بن الحنفیت رحمه الله هل جزاو الاحسان إلا الاحسان قال هي مسجلت للبر والفاجر قال ابو عبد الله قال ابو عبيد مسجلت مرسله شخص و باب از صحيح عدم مفرد من بخاری باب الاحسان الى البر والفاجر احسان خوبی کردن به انسان کار و بدکار چه آدم خوبی باشه چه آدم بدی باشه انسان سزای خوبیش رو می‌بینه انسان سزای خوبی حتی اگر به انسان بدی خوبی کردی، این حدیث رو نمیورد با این حدیث زیر شب میورد من بخاری زن بدکاره چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم همومی هست سگ رو می‌بینه داره میمیره نه چیز از دین و دیارات نمیفهمیده جاهل بوده سگ رو می‌بینه آبی بهش میده از تشنگی نجاتش میده یک رحم به حیونی هل جزا الاحسان الا احسا احسانه یک سگی این زن رو بهشتی کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید این زن با یک سگی بهشتی شد رحم قلب داشتیم اونجا یک زنی اهل عبادتی با خاطر یک گربه ای جهنمی شد حبسش کرد غذاش نداد بی رحمیه انسان باید قلب رحمی داشته باشه انسان باید در حق دیگران خیرخواه باشه خوبیشون رو بخواد نه بدیشون چرا شخص حاسد مزمومه چون خیرخواه دیگران نیست میبینه طرف فلان ماشین سواره نمیگه الله خیر و برکت بهش بده الله بیشتر بهش بده میگه کهی میره کی فلان میشه کی الله ازش بگیره نفرینش میکنه حسادت شره حسادت گناه وزره و الله در سوره یوسف هم بازم اینجا هم نمونه شما داری برادران یوسف بیرحمی شد سبب شد زلیل بشن خار بشن حسادت سبب شد که که چرا پدرمون یوسف رو بیچاره می‌ساره همین حسادت نسبت به محبت نه نسبت مال دنیا قصری، کاخی تلایی چیزی نبود بلکه حسادت ورزیدن به یک محبت بیام یوسف رو تو چاه بندادیم یخل لکم وجوه بیکم تا اینکه پدرتون مال خودتون بشه چشمش تو چشمش ما بیفته همین شیطان وسوسشون کرد بعد ذلیل شدن خار شدن تا جایی که سجده هم کردن در مقابل یوسف بعد از اینکه عزتی یوسف رو دیدن و اینجوری الله توبیخشون کرد خار شدن یکی از مظاهر سوره یوسف اینه که الله میخواد بهمون همون کنه حسادت شره شر حسود این این حسد الله از ما خاصه که شر حسود به الله بناه ببری حسد شخص حسود خیرخواه مردم نیست ولی مؤمن متقی خیرخواه مردمه دعای خیر میکنه الله خیر رو تو مالش تو زن و بچهش تو زندگیش بندازه تو خودش بندازه اینو ما باید یاد بگیریم خصوصا از این برداشت که اهل علم همچون بخاری دارم از احادیث، از آثار، از آیاتی که از قرآن یاد میکنه نوید و هفتمین اینجا اثر رو میاره از محمد ابن علی ابن ابی طالب ردی الله عنهم ردی الله عنهما نگفتم عنهم چرا؟ چرا گفتم عنهما؟ ابو طالب مشرک بود محمد ابن الحنفی چرا میگن ابن الحنفیه این لقوا بهش میدن؟ چون مادرش از بنی حنیفه بوده فاطمة نبوده دختار دختر الرسول صلى الله عليه وسلم برادر حسن حسين محمد يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ده ويمجي قال هي مسجلة ودر رواية مسجلة للبر والفاجر مسجلة ودر رواية مسجلة أي مرسلة مطلقة في الإحسان إلا كل أحد يعني ان عطا و بخشدني و نيكي کردني در حق هر کسي باشه بخشو يشي. عطا کردنی جزا جزای اون خوبی احسانت به بر و فاجر در ازای اون پاداشی جز خوبی نیست هر خوبی که بکنی در حق دیارا گفتم حتی اگر یک سگ باشه حتی اگر یک سگ باشه زنی و حشه و بدکاری با یک آبدادن به سگی بهشتی میشه انسان نمیدونه کدوم عملش مقبول به درگاه الهی باشه باید این اوصاف رو همیشه انسان روش پای بند باشه واجره في رزق الله بخيرا سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله والحمد لله والصلاة على محمد وعلى محمد